بیرانی خوشویست اشنایان و هگرانی دنیا اکتب سلاوتن لیبید خوشحالین لبش حفته و یکی خوند نوی اکتب چشتی مجاوری هجاری مکریانی حتی ولاتان فرمون لگل بن. تجومی کی زور گوره للاین حکومت و لامرگسوره وکره شر تنبتن و بنیازه قومه امراغای دولماری اوقای جاشه که یزیدی تجه زلام بو بو جاشه که بو گونی و بایده بو بلام جاش کجره بو امراغای بگونی بادره و گینده دکتر محمود لو شرد جګل سدان سرباز او افسر 146 ل میدان د بجمابو اتر لو شروه دولت کو ته پاشک شو زمالوسی کبا گفتګوي اگر ما ودا زوري نه حد کړدم دی من جنومندالی بارزانیان بو کله بربانو لبندارن د جیان مالیان هر او بو کبا کول یا نو بو بلهم اون قط ګلایین لبخت خوین کړ راستی حالی که پریشانیان ها بو. اوکاته که لبنگریان بوینو هشتانه نردره بو مخور که برزانی اک بناوی آغا که آغای زراغوانیان پیدا گود خریگ بو لجه گوندی زراغوان خانوی که برد دروز ده کرد. دیواری تانی و برز کرد بو. و تی دا جاری پینجه مدیم خانو بکمو بر لطاو کردن پین بجه دیالن. بیستانو که هر کر هجار با خیر و تروزی و تماتا بگنی پیخوری تو لسر من روژی اگ دیت موا اوتم اغا دزانم خان وقت بجیهشت جهیشت بلان کت چی لی هد اوتی بیستان هر لگول دابو راوی ناین روزه وتم بچم سری بدم کدچم دو دان جاشی زیباری لناوی دن خوم لی گرتن قربن هر دو کم کشتن لباتی تروازی دوت فنگم بررخت فیشه که و هینایه و لو برزنده زور پیوی زور آزاد کجرانو بریندار بون روش یک بومبای کوت بوا نو سنگریه که و لدوازده کسان ککو درچو ککو لشری مامشه دوری سقز نو بانگی کردو بسیج بریندار بو لشری دوری شنویا بریندار کرا بو لو بومبایش هرچند نمرد بلام لزمانو پی کوت امر اغای دولماری للای سری حسن بگی چوب و زگجاشن رویه که زورگوری لیه بردابون لرگه مر پیوه دابو بو حالش توانی بوی سی سر در بگر احمد توفیق که دوی او بردهات بو توشی سی ماینو اسبو دو بره که ماچه استر بو بو که لراوکه هل برابون هینا بونیا برزن ماچه استرکه زورجوان بو ددگود با قلم کشوتا احمد دیگود بخم. شوکتی بیاسیم دوای دکرد. هر چی دیدی عاشق دبو نمذنی دوبری هشت بار نکردو بو بوتا فروخ لقاو او همو دل داره. ها. آخری شیخ بابو دوای کردو دراب او. دگل میرانی سالح بگ یواریک چین سری کن قلای میر روان دز کل دیاری کانی قالای کی زور قایما ببردی زور گورای رش د مزراوه ک دیار بردکان با کوتان گزراونه امباروی گورای تی دابو ک گراین و بنا کولانی گوند هاتین من سرکلاوم لسربو من دالک بیتمی زراندی زورتلسا میرن وتی او فقیره هر سرسوی ملباری چی دیتو توي به ورج زانی بو یل ترسا سرده پاییز بو شرل جبهکان و استابو بنام آلقه محاصره هرما بو بر یارد را برو سوران بروینوو احمد توفیق و حاولانیو میرانی صالح بگو دو پیشمرگی کوتی نره شویک لنزیک سنوری ترکان ماین هندیک چونگوندی چونگون دی زیته ترکیه کاو شو پاتوی کولکنو ورده اسباب بیان کړبو زور حسرت بو که سی شک شکنه برد لپت وکم بکرم روجی دوای کوتینه نو سنوری کوردستانی بردسی ترکیو شش ساعتی که برد برد تالی درچوین توشی جندرمنه بوین لرهغه و پیش کوتم ک تا اوانی تر دین گی لبنداره گی وژ یک بون پلارم تداګرد پیویک دو کو بدستوکه چی کی زور جوانی لی آکاکا تو بازرگانی کوتالک پی ا گتم نابر من مشتری شکمی جوانم گیشتبو حوالکن پیوتبون او پیش کو تو شیتہ هی چوک چودر نہ چودل شکمی د کرم ل نو لزی هاتینو نو ارز عراق شایل قبرستان اکمن خست یک دنیا داری وشکی کی تدابو؟ بالام لدیکه نزیکی که هل ماست من لیکارین و تبیان داری قبرستان بسوتیان دمرن. دجال احمد توفیق بر بوین دارن اوانی ترش غیرتین هاتبر. آجری او شو تابیانی جری بلند بو. امجر پاش یک دو ساعت ره کوتین دشت. احمد توفیق کسی ندگیشته. هر حیدیشی لیا ذکر دیم. دی گئنا سرگوماوی کی زور خوش چند دربیل دوره سی وری ددگوت نیو راست بهاره مام علی بایزیدی دله اخ یستقام یش با موتیرم لو سیوره خورد باو لو گومد بنو سبب زور برسیبو احمد هر دای برون دمزانی اوانی تریش برسیانو لبر احمد ناویرن دنگ هر هرچون بو پشکوتم گئم اشوانک اوتم کاکانا نت پیه وطي نا باقوا وطم اي شير پيت نيا پي وطم كاكا قاباكم ينده پينسو چلقنا كاز بيزي نا شيري پي مخواتاوا ايش نيا بيشوام پي موت دا تو بوم بينا بزانا چونم لقابي رش حلقراوي مو پي و نوسراو دا شيري بوهنا چاوم قچاندو يقصر بسر مونا آه يكم اگر بود بليم قاباكا چون بو استا هيا لن احمد دیت کوری اکی قلاوی لکابره شوان کری و پتمن کرد که لکوی بنامانگرد بیکی و هموانی زور شکت کرد. تالناو چند بیگ دا بنامانگرد و که ورمان سر و که کرد و بزیگی زور برسی و چاو نوری برژان دنین لپر لپیش مانو بو بطاقه شو بو گلی لکی شرکران من دادید سور خوشین پیاو لطاقه کرده بو خبرچی هم وطیان؟ کورینه ببیته بیان ته لدشت یارته شرماندک جهگی خوشاردوش نی هر بپل توزه <تصفح> گوشت حل ده پروزه او قوتمند ده کوت نری شوی کی سرد لو دشته وک ميو جوکا حل دلرزین بوبری بیان ی گشتینه نا گوندی سدکن چوینه نو دوکانه چوله کوا اگریک منکر ده او ماتمن حل خبری او شرا گوری شومان پرسی وتیان جا شکان چای سری حسن بک با قصدی تفنگیان براو یکتر تقاندوا، با دولت یانوتوا برزانی حتی بونا سرمن، تفیشه که زورور گرن امش فیالی جاشن. بناو گندکانی مهاجران دا سرکوتین با گربی و با شو چوین راستی سبی بو نیوارو لگون دیگر تک بوینا میوانی ملاویسی و پش نیوارو براو راست حتی نوا. لک‌برستانی که سری ری در جوچه کبو جوچی زردی درشت دادگود بوهتیو برگرتوا وتم هایلو جوچم ملاوسی و توی کاکهزار هیچکس هیچ استن نیو را و پوشه کیشلو قبرستانه بره دیار شخصی که زور تو رایا. وتم ما مصد راستا اقسی حسابیم هیا روم کرده قس وتم ای شخص جوچه کانت گیشتون فرموبیان تخی نوبیان خو ده نه دورنو درزن، اگر نه، اجازه بده من بیان خوام، خوتو گلی بخیل نی، نه خود بخویو، نه دی بکس. چون بلا یو جو. ملاو دوسفی صوفی هاوری دالن، نکی، گناحا، حراما، قمل لدرده گیوش ده باری، باور که ملاو صوفی که گناحا که من بمن کرده بو، هیچیان منه نهیشت، گیرفانیان لی آخنی، دオリګر ته کوروست کوند اسمیلانی شیلې هیا لبرباغات وګبهشت لا ب فریزستانجدا سی و سوره بداره نو چاول پیاو د دگرن کوتون ملي نزارې حاسا روست ک بلنتر چای عراقه او بهمو کې وقته دلین حلګل لویو لیکل براین من راګل میرانی صالح ب کوتم ک بچین سرګ لولاتي خوشناوتی بدین ولاتي خوشناوتی په تایبتی ل پایزنده بسر میودا ویران دبه همو دیهاتی که یک جار زوریشن پرالهنه رو هنجیر و هرمیو سیه و همو بریکی دار و همو جورت تریه یک. میرانی صالح بگ لا میرانی خوشناوی شقلاویا. هرچن رود بو ده سلاتی اغایتی و میرانیتی نبو. بلان بیرو بروی میرانی هر وک خوی بو. رو جانه پیش مرگی که دیگود بچو لما فلان میران بله میوانی دبین. جاریابو میرانی خانه و رود و کسلق نانی شوی نبود. روزیک با پیشمرگی خود، شه حسين هرمالی و خحسان لذیعی به میران میاند. وتم میران زور ایبابو اما میانی که خابین. که میران یک نیه لون زیکانه بچینه مالی، تی نگی گلته کمودی ناکه حجار. که خحسان هرلم مال من دعورک را و بخیوام کردیا. وک مال خو مانا بر رکاری زی و چه دیمن یک؟ به هزاران در هنر لسردی و پایزده گلائی زردیک وک زیاری خوش، گلائی میوی رز سورو له هنران حالاوا خدا تابلوی کی نخشاندوا همو هنرمندی دنیا دکه. زور وستامو روانیم او دیمن دل رفینا چون نمالی کیخه حسن یکی زیتی قطی زیارک دلیل لکنه تفن کی شیطان درچوا رو خوش، قصه خوش، زور آقل بو کیم څیر بو هر دانیشتین سینی کیمیاو جو کک لاګویس لپیژ دانین بشی پنجه کسې دکړ میرانوتی دچمه سراوه ت دې مو چاکه ساز به کور رېشت کې خه نیوت اری میران نه فرمو کې حسن هتی وی خو من بو جابو ابله وتی کور لولا کیغا بشکینه ګوسکی تیدا سګم لوتی اټرا ساله د جرده نیره توتن و میوی بابنیرم. دلی حتیوی خو من بوا. لما لما بخیو کراوا. شو زور خوش من میران تو رکیه که گوری توتنی بانداری دا گیره و لیسن. بچن مال میرانی بینانی تراو رامن بوار تاگیشتین هیران. مرکزی شیخ خانی هیران کلباتی شیخ پیاندالین کک صافی شاعر که دروشن شعرکانی بدف و دخوی نوا ککی هیران بو. بوینه میوان شیخ صبری کبره میرانی صالح بگو تیم سری کی بازنشسته بو معلی لهولر بو لترس دولت بتنیا لحجره حجره کی هیران دجیا شیخ وتی استا شی وکتان لولیدنیم زور خوش گوشت اووی تماتو ترو تویلی کردنه وشتیکو لسر کوریدنه چودر کاته وتی ها تشتو کین ایلون بو لسر اگر حلق چابو بو بو توپو چشت حبس کاک او دما پیرامیر دګ بو بناوی کاک علی تابل پیوی کی مبارک بو لو دی که همو دنیای دارو او مو شونګ بو کاک یا ل دور حوزک لبن سی بری شوربیان کبر راستی شاعرانه کاک لقصه قوری من خوشیدات همو ایوارند د بو بچملای روز یکوتی جابګرهجر و نورج بر رمضان ماوه دبه مانج رمضان لای من بی وتم بخوا کاک به بخښه من برو نابم خوشم تي... nah, با تو بلیدن ندم و تی نا بابا رجوم مابا شرط با خوم نانی بینی و نیواراد با دینم پیرامیر دیکی دیکی برای کک بنایو ممنور هبو دمو چاو چرچی لود اولاوی شلو شویق او انده خوش بو نبیتو پیو مردوی لگو ربا ممنوری دیبا دهات پیکنین زورم قصه خوش لبیست زوری شان بوده یرامو که بده خوال لبیرم چونه با دو سیشتم لبیر ماون ممنور لناو آغاواتی دزایی لدشتی هولیر میوانه پیاوی کی هیرانی ده لیده پرسی تو نگه ایوا؟ اوش داله بله قربان سخوره بوا یعنی تازه دگه ممنوری داله حتی وزب. است آغاینی دزایی همو هجوم دبنه سر توی هیران لخانقه سید احمد لکرکوک ممنوری اچیتا اودست دیواری اودستکن نویو بحال تانیوی لشی پیاو دا پوشن اغایی که باش ناغیش دا چه تا اودستی تنشتی ممنوری داله بخیراتی بابا خلکی که ای هر لعودست که دا جغاری که پیش کشدکاو لسر دیواره و بویده دا گیرسینیو مل لچاکو خوشیو باسی کاس بیو کردکن بسید بس احمد داله دو شیط لعودست چاکو هره دزانی فیکی ممنوره پی داله ممنور او چت کردوا آیوس دلی، قربان، با خدا پیاو شرم لمیوانی خوید که نه دوی نجغاری ندادی. سید دلی هر امر رو دیوارکان بالنترب کن. کمالک آقای دزدی دکل ممنور دست نم ملال جوجه کورده. لباسی ممنور دفرینن. تدیبه در که خالی پیدا دکن. ممنور مندو با زمانی کشاآو کاکاش پیدا کنی. پیدالن، بچی پیدا کنی، دلی، با خوا کا که خوام هر وقت برای فنجا سدوريان دابيو دقرو ليتي وردن خوشویستان لیره داو بمشه ویا حتی نکوتای بشی حفته ویکی خوند نوی کتی چشتی مجوری مکریانی تا بشی کترو لشوی کتر دا پیتندگی نوا جیان تن بن.